بسیاری از طاجوشگران معتقدند دوستم شناخته سخراپ را کشته ولی اذه دیگر طب به سنت معتقدند رستم ناشناخته پسر سخراپ را کشته است نظر مستوجنیدی در این باره چیست نوایی از سر یک بار استاد فهمولانه دو بار فرمودند با دیگر می به اگر میشه خیلی کوتاه بفرمایید که این ما ماخازم شوهنامه است حد سوگمان خودمون نیست در داستانا بینیم که رستم این ناشناخته و بعد وقتی که شناخت و وقت میبینیم که شاید امشب برسیم بونجا نه با حدس و زندگی نکنیم بیتره که شاهنامه رو ما در برقیقت به نظر قرار بدیم استاد گرامی شاهنامه رو در من زنده کردی چیرگی چیرگی بی بدیلت در بیان و آش آرش آش من نمیدم آده در بیانوارش ببخشید چون فاصله افتاده من خوندن تو بایسته ستایش هست استاد گرامی شاهنام را در من زنده کردی چیرگی بیبدیل از در بیانوارش بایسته ستایش است. اگر سیدی سی دی بیانت هست راه نمایی فرمایی درود و بدرود این رو از استاد نپرسید از ما بخوایید از برنامه ما بخوایید انشالله این رو چند ماه کل فوری خودم زبان دادید <تصفيق> زبان دادید. بله. به جای قول دادم بعد این زبان که از این پیامک‌ها یکی اومد زبان تو تیت بله حالا بله زبان تو بله، بله. بله. قبلی بله من موین قلینگ ان شاء رو, رو تقدیم استاد می‌کنیم تقدیم علایمندان می‌کنیم تلاش زیادی متیری محترم شبکی کردن که انشالله اینها در دست شما ازم خوشا برونی پنجره خواهی شما با تلفن های ما 220-485-220-582-0 و, و, و, و, و شماره پیامک 3558 تماس بگیرید سوالات خودتون رو مسرح بفهموید شاهنامه ها باز باشه که ما داستان و سخراب رو میشنه از زبان آقای دکتر فریدون جانهی جنبی همه تعصب نسبت به ایران شناسان غربی با همه خیانتهایشان به فرهنگ ایران دارند. مگر ادهی ایرانی که در فرهنگ ایرانی تجوهش میکنن و عمری صرف صرف میکنن چه ادارد نوایی از تهران منانتون بخش اول بر شما این پوستش دو بخش داشت که هر دو بخش همدیگر رو نقیز, نقیز هم بیگر هست بخش دوم این که گفتن که کسانی که عمر رو میگذارن برای رو فرهنگ ایران مثلا کناکار نیستن باید که کردن اگر نتیجی کارشون درست باشه و پجربهش راست کرده باشن ما هم باید بامدار رو نو من همه اکنون 10 دقیقه پیش از کار انگلز زیاد کردم که انگلیس گفته بود که زبان فارسی به بهترین زبان جهانی که میتونه خانواد کارگران رو به هم نزدیک بکنه من هموارد در کتاب از هارولد والتر بیلی ریفت انجامن فقه هلوغای انگلستان ستایش با ستایش یاد کردم که گفته که زبان های اروپایی ریشه در زبان فارسی باستان دارند. بنابراین اگر دانشجو انگلیسی به خواهد زبان و مادری نیک بیاموزد با ایست آگاهی های از کتبهای فارسی فر... باستان به دست آورد ببینید این مثلا این نمونه اشخاص اینا قابل ستایش هستن اما بسیاری از این کسانی که نام ایران شناس دارن تا یه دستگاه و عضو یک سازمان مرموز شگفت عجیب هستن که دشمنی با ایران میوزن من اونها رو مورد خطاب قرار میدم و من هیچ از بیلی به بدی یاد نکردم اونها فراموش کردن حتی زبان ساختن به نام هندو اروپایی تا زبان ایرانی رو نابود بکنن یعنی شما ببینید من یه روز به آقای در یکی از برنامه‌ها دیگه گفتم به ریچارد فرای گفتم در استرالیا بودیم که من سخنرانی داشتم او هم داشت گفتم که آقای فرای شما برای چی نام جهلی هندو اروپایی رو قرن گرید اگر یه دو حلقه عزیز انجیر باشه یکی هند باشه یکی اروپا حلقه اینجا اینجوری از ایران چیه چرا نمی زبان ایرانی آهمان زبان های دو سوئی که رفتن به کار بریم گفتم خب اینا قبل از این که برن زبانشون چی بوده؟ قبل از این که برن اروپا رو تشکیل بدن و هند رو تشکیل بدن زبانشون چی بوده غیر از زبان ایرانی و شما بگید ایرانی نه بگید بگیر انروپ های گفت پاس و به به هر و تخه کو دو دوسویی که رفتن ما نام دادیم گفتم یعنی هند به هند و اروپا گفت بله. گفتم پس چرا نمیگید که استرالیا آمریکایی برای که بعدا رفتن به آمریکا هم تشکیل دادن استرالیا تشکیل تشلیل دادن گفت نه اون زمان که استرالیا و آمریکا که نبود رفتن خب اون زمان هند و اروپا هم نبوده ریشار سرش سرشنداخ پایین پاسخ نبوده خب وقتی یک دستگاه فرهنگی عظیم در اروپا میاد یک واجه دروغ و یک نام دروغ به ما میده یک نویستنده یه یعنی حالا از همین ایران شناس فیلیپ جینیو از فرانسه چند سال پیش اومده بود در ایران در, زب... در حقیقت انجامنی بود در باره زبان ها و خط ها در ایران رو باشتان. ببینید این مرد بی در سخنرانیش گفته بود که ایرانیان خط رو از همسایدان خودشون سرقت کردند خب نمیتونست بگید که اقلن بگه از همتونه آموختن نادرسته زبان یه زبانی درست کردند به نام زبان آرامی خب وقتی که شما میگی زبان کردی یه جایی به نام کردستان هست میگه زبان بلوچی یه جایی به نام بلوچستان هست میگه زبان مغولی یه جایی به نام مغولستان هست این زبان آرامی مال کدوم کشوری بوده به نام آرام که ما در تاریخ نداریم اصلا و یه دون سنگ نوشته ازشون نداریم این خط رو درست کردن تا اینکه بگن ایرانیان خط رو از آرامی آموختند این دروغ این کارها همه در حقیقت پستی رضالته که اون انبوه کسانی که نام ایران شناس در اروپا دارن همش حمله میکنن به ایران نه به, چ... به هندوستان، نه به مستر کش... کشورهای باستانی اطراف ما فقط حملهشون به ایرانه بلی که ایران سر بلند نکنه ولی جونها شیر بیشه ایران همشون در حراسن این فرمان سیاسیه که به های فرهنگی اروپا دادن که همش با ایران مبارزه بکنن و چنین نیست من برای کسانی که دروغ میگن خب ارزش قائل نیستم بس در کتاب ها نوشون اون کسانی که خدمت کردن اونها هم همچنه ولی این جمله اصلا دو سر داره با این حال پاسخش بیشتر از این نمیتونه باشه دیگه. بفهمید با یک جور جنیدی که دامنه دوستی دوستان دوباره بیت آخر رو میخونم که همین بچه را باز داند چطور چه ماهی به دریا چه در دشت گور نداند همین مردم از رنج آز یکی دشمنی را فرزند باز به موسی رسید این از آن آن عظیم چنان تنگ شد بر آن زمین که از یک دگر روی برخاشتند دل و جان تو آمد سوی لشکرش میان سوده از بند و آهن برش به بومان چنین گفت که امروز هور بر جهان گشت پر جنگ و شور از اون صبح تو کابوس کی پهلوان را بدید، برخیش نزدیک جایش گزید، تو صحراب رستم سخون برگشد بالا و برزش همی کرد یاد که کس در جهان کودک که نارسید بدین شیر مردی و گردی ندید به گرز و به تیخ و به تیر و کمند هر گمه آزنود بند چو فردا بیاید به دشت نورد به کشتی همی بایدن چاره کرد بکوشم ندانم که پیروز کیست ببینیم تا راویی از دان به چیست از از یزدان پاک دل بدسگاه اولد کند چاک چاک این دل رو, تو رو چاک چاک کنه بدون گفت که با فرشا براید همه کامی نیک خواه در جهان جا دانه نماند به گردون مرا خود بهانه نماند رستم میگه من پیر شدم و کاری بسیار کردم و بهانه دیگه ندارم به گردون هیچ کسی هم جاوزانه نیست میره اگر خرابشه که از جهان دارم هیچ اشکال نداره در مرگ را آن دو کوبت که پای به اسپنده آورد به جنبه از جای یعنی کسی که اومد تهلوان شد در مرگ رو میکوبه خواهی نخواهی روز مرگ در میزان به سناقش میاد همه مرگ رایی پیر و جوان به دیتی نموند کسی جا بدان سه شب نیمهی گفت سهراب نیمه. آرامش خواب بود چقدر قشنگ اینجا پرداخت فردوسی این به اینکه که چقدر قریه تحلوان به خودش اومده در مقابل یک حریف قدریش داده از جلوش یک قدر هستش و حالا اگه نمیدونم دبینه ترس به دل تحلوانش افتاد ترس نیست ولی پیشبینی میخواهی که کندر من ببیرم و تو گفتار اینه که, که کس در چهان جاوردانه نمون پهلوان نباید به نه در مقر رو آن رو خوبت که سواره سوا هست پیشه و پامیشه میره به جنگ خواهی نکنی در جنگ ممکنی بمیره اصباقا در ایزان و باستان آرزو میکردن که در پهلوانان در رزم بمیرن نه در برزم اصلا در برزم مردن رو چیزی شایسته پهلوان نبیدونستن یک دهش ایزدی می دوستن که پهلاون در میدان جنگ بمیره جانش رو فدای ایران بکنه اونجا که زندگی معنی پیدا میکنه برای یک پهلاون همچنین بل پیامک ها آن یک نوشتن داستانه در مورد یک سریال تلویزیون بوده که رستم و اسفندی بوده که چند سال پیش بخشونم من میخونم پیامکشون حالا حالا من این قضیه صحبت داشتم و خدمت های دکتر جنیدیم. ارز کردم و حالا شنوندگان عزیزی که میشتم خیلی کم پرداخته شده متاسفانه چند شب چب... پیش هم من داشتم اتفاقا از طریق که خودمون در خبرها میشنیدم کارشناس برنامه بود مثل اینکه داشت میگفت که میفرمودند که اه... خیلی کم پرداخته چرا پرداخته نمیشه به این مطلب چرا با توجه بهنایی که داستانهایی شاهنامه داره چرا صحبت نمیشه چرا سریالها اه... نمییان فیلمهای سینمایی یا تئاتر نمیاد به این داستان های شاهنامه بپردازه این بیشون هم همین زمینه نوشتن پرامکشون رو با درود مجری متشخص و فوق مهربان برنامه خیلی لطف دارید نخونم. همچنین استاد فرهیخته های دکتر جونیدی لطفا توضیح به سریال رستم و اسفندیار که چند سال پیش از تلویزیون پخش شد چقدر با واقعیت مطابق بوده با سپاس فراوان رسول حسین زاده از کرماشان کرماشان نه کرماشان شاهرم بله. یه, یه دلیلش این بود که روان نیاکان و روان فلسی نگران بودند که شاهنامه ویرایش پیدا بکنه بعد کار کانوه عطین رو, رو شاهنامه انجام بگیرد چون اگر یه کاری انجام بگیره با این ها در خود شاهنامه نیست این هم شاید یک دلیلی بوده البته فکر نکنید من آدم خرافی یا خیالاتی هستم اما خب گردش جهان اینطوریه بعضی وقتا میبینید که یک کاری به موقع خودش باید انجام بگیره خب حالا شاهنامه ویرایش شده در دست هست امیدواریم که هنرمندان هم به فکر این باشن که صحنههایی از اون رو روی رو رو نمایش بیارند و مسئولان کشور هم پی ببرند این براشون یک پیام و حسدار کننده باشه که ملت ایران میخوان که بیشتر روی شانوه کار انجام بگیره درود بر شما نام شهرستان رام هرموز به چه منوست؟ رام در حقیقت همون روم و به معنی خانه است که در انگلیسی روم شده و بر خیلی از شهرهای ایران مثلا مثل زومدان، ما این نام رو داریم هرموزم که معلومه که هرموزه نی جاهگاهی که هرموز, هرموز ساخته و پیامه که بعدی درباره سلام خسته نو این پیامه که من میخواستم قبل از این بخونم قبل از این که میتونید اما الان می‌خونم. در مورد آرانی زبان آرانی که شما صحبت میفرمودید زیبات این واجه به نظر سلام خسته نباشید لطفاً از استاد بپرسید ریشه کلمه مادر چیست آقا مسی آقا مسی در زبان سانسکریت و فارسی ما ماتر ما ریشه یعنی اندازه گرفته ماتر یعنی و ما طرف پیشوند فاعلیه یعنی کسی که اندازه و افسایش افراد خانواده با اوست یعنی کسی که فرزند میاره و به شماره افراد خانواده می افزاید. این زبان این در فارسی شد مادر در اننگور مادر در فر... مقامتی در زبان سانسکریت و فر... ما طرف ما ریشه یعنی اندازه گرفتن ما طر و طرف فائلیه یعنی کسی که اندازه و افزایش افراد خانواده با اوست یعنی کسی که فرزند میاره و به شمار افراد خانواده می افزارد. این زبان در فارسی شد مادر در انگلیز شد مادر در گیلان شد مار در خراسان شد مار در فرانسه شد مر همه اینا ریشش موتر موتر انگلیز موتیه و موتر آلمانی همه اینا ریشه در همین داره ماتره یعنی افزانده خانواده. خواهش میکنم بخانید که طاعت میکنم سلام کسی به من گفت که آبا این روستم و سهراب همش افسانه است من جوابی نداشتم دشویدم لصف کنید من رو نمایی کنید با سپاس علیه سالاری از مشهد کسانی که از خیش بریدند از فرهنگ بریدند میتونند چنین دابری های بکنند ما که داریم میخونیم می‌بینیم و اینا نشون میدید و دا داستان ایران دردرتر دوم دردر رمز های این گشاده خواهد شد و شما خواهیدید که همه اینا تاریخ، و شوانامه زیباترین، در برگیرنده ترین, ترین تاریخ جهان و بر همه تواریخ جهان برتری داره و متعا حالا من میگم برای که اینا به صورت تاریخ نوشته بشه شما نگاه کنید به کتاب زندگی و محاجرت آریاییان که من سی یک سار پیش نوشتم هنوز این جوان ایرانی که شاهنامه رو دوست داره این کتاب رو نخونده تا ببینید رمزای شاهنامه چیه تا به که بزرگترین تاریخ رو در دنیا گسته تاریخ رو در دنیا ما داریم نه به اون کسانی که این تو هم میگوند و داوریشون از روی است شما کار نداشته باشید شما به گفتار پر از پند و خرد و حکمت پیتوسی روی بیارید پاسخش خوا اینجا دستید که روز نخست نبرد رو سر سهراب بدون پیروزی هیچ کدوم از آنها به پایان رسید و دو پهلوان آماده نبرد فردا هستند اما چون از اتاق فرمان اشاره شد که تلفون های بسیار شده در من فکر میکنم که همینجا که سر بند هست سخن رو کوتاه کنید یکی تا در نیمه داستان راه کنید با سلام چرا باید سهرا به دست رستم کشته شود فردوسی چه قصدی داشته است لطفا به بفرماید فردوسی هیچ قصدی نداشته است ما در این بار بارها صحبت کردیم فردوسی تاریخ مدون ایران رو که از پهلوی ترجمه شده بود به فارسی از زبان فارسی به گفتار شعر خود ین پیوند گفتار خودش آورد و فردوسی به هیچ هیچو در ها دخالت نکرده و شما باید اینو ین چند بار بگم همش میشه تبلیغ کار خودم. ای جوان ایرانی، کتاب داستان زندگی و معاجرت آریا رو بخون. یه هم شما رو امضا بشه. کردی تو این برنامه من فرموندی که باید بار اول امضا بده. اما ما باشند. بهش نمان. آقای دکتر باز هم میاد؟ چون بعضی از سوالاتی که شما میفرمایید، چندین این بار در برنامه های مختلف پرسیده شده از آقای دکتر و آیا یک باز هم من در یه بخشی ازشون خواستم کنم که این رو با توجه به اینکه گفتند بفرمایند سلام خسته نباشید آقای حدایتی مجری محترم و استاد جنیدی یک یاداوری داشته باشم که هنوز در زبان تالشی شمال کشور ویر به معنای حافظه کار برد دارد مثلا مثلا مثلا میگویند من ویرسه یعنی تو حافظه هست یادم نرفته من ویرسه. من رسه در خافظه من بله خوب خیلی من، و پوزش میخوام از اینکه زبان تالشی رو بره در زبان تاتیم هست در خوب خیلی از زبان های دیگه هم ممکنه باشی من به عنوان مثال کردی رو و زبان دری جزوشان یه از رو گفتم تالشش رو بیافظهیم زبان خیلی خوبیست دروز در اصداد عزیز زال سپر سیموغ را برای چه کارهایی استفاده کرد؟ سپاس درود بر شما در آینده خواهیم دید که در جریان داستان استنجار پر در کار نبوده استفاده بین زال و سیموغی که در به هنگام درد و ناامنی و تشویش اصطراب سی مرخ خودشو نشون میده سی در در عوستا سعینا،, سعینا نماد پزشکیه هم این اندازه بیشتر نمیزونم بگم بعد مکل میشه به داستان ایران برنام شما الان اینکه مخواستم ای خیل تشکر کنم با ن واقعا ما تو این حد آشنا کنید. به شاهنامه و اصالت ایرانی بودنمون ملیتمون بعدم از دوسه جاندی خاهش کنم ببینم که آیا اسم نیلوفر پیشینه ایرانی داره یا نه متشکرم اسماعیل هستم از دانراباس روز به نیلوفر که در کرانه های همواج لطیف دریا پارس به گفتار های حکمت فیضوسی گوش میده دختر ایرانی فرزندان ایران باید همه همینطور طور باشن نیلوفر ایرانی باجی در زمان پهلوی هم نیلو بوده یعنی گلی که پره نیلی رنگ داره شاد باش. با درود بر استاد جنیدی آیا بده تو شاهی وگر اجدخواه پیچری بباید به این داستان داوری در داستان کاوه دادخا به همین صورت هست درسته تو اگر شاه هستی یا اینکه پیکر اجدهادوری باید داوری کنی در این داستان همینه به همین ترتیب پر از <تصفيق> با داستان رستم ماستاراب، و غذی برگه چه رستم تعمیر هم را هم خودش نخواهد. استاد نکته چون تعمیر سرزمین بوده من درست معنی اینو متوجه نشدم. ایم شو استاد درم متوجه داد. تو ما در نکونم. ما در جهان نریمانی استاد درود به نریمان نیاهی بزرگ رستم اصام و, و آقای نریمونی و درود به احواز که در زبان پدهی خوچیستان باچار بوده یعنی بازار خوزستان خب من اینا رو در آغاز برنامه یعنی در چند ماه پیش بعضی از رمزها رو چکافته بودم بسیاری از این زنها که در شوانانه در بخش های کوهن شاهنامه ازشون نام پرده میشه اینا زمین و شهر و یه ناهیه هستند زمین و شهر و ناهیه در زبان های باستانی به صورت کاربرد داشتند. همین اکنون هم در زبان اروپایی مثلا دو تا دانشگاه را اگر به هم پیلند بدن میگن این دو دو دانشگاه خواهر شدن چرا نمیگن برادر؟ یا اگر تا شهر رو با هم پیون بدن میگن خواهر شهر شدن در زبان های اروپایی هنوز این موضوع هستند است که در زبان فارسی از بین رفته بنابراین وقتی گروهی از سکاییان یا سیستانیان مهاجرت بکنن به یه سرزمین تازه و در اونجا پیوند زندگی برقرار میکنن اون سرزمین تازه نام زن میگیره و گروهی که اونجا رفتن که مذکر هستن نام مرد میگیره کم کم این در داستان خلاصه میشه در پیکر یه رستن و یه تهمینه و یه سهراب کدام کشور اولپایی بجز یوگسلاوی کلمات فارسی زیاد دارد با تشکر شهاب. درود به شهاب ما در خود بنیاد نیجابور یک کتابی چاپ کردیم که یکی از استادان دانشگاه اوبسالاینرو نوشته سیسد سفس واژههای فارسی در زبان سوئدی کی میتونه باور کنه اینا وا فارسی در زان اما از اسکاندیناویس اینا سکایی هستند و یکی از دختران بنیاد به نام سارا رحمانی که نام گرد و فرید برخوادش او مشغول هست که واجه های ایرانی در زبان آلبانی ترهم بکنه یک کتابی ما سی سات کردیم واجه های ایرانی در زبان انگلیسی یک کتاب چاپ کردیم واجه های فارسی در زبان اویغور چین این کارا انجام شده و اگر نیرو باشه و تمام باشه پس از این هم انجام خواهیم داد تا نشون داده بشه که فرهنگ جهان چقدر وامدار فرهنگ ایرانه از اینکه پیام منو نمیخونید دیگه برمومتون رو گوش نخواهم داد ای بابا چرا؟ تو خدا اینطوری نگید چنوندگان عزیز پیامک ها خیلی زیاد هست سر بار که من میزنم پیامک بیاد اجزه میدید که من اینجا, بگم. <Yani> اینجا خوبیه. این در حقیقت این که همه پاپ حمی پایرم نمیشه نمی‌شه بدونید که وقت نیست یعنی ملت ایران به برنامه شاهنامه توجه داره و از این دیدگاه بله. نگاه کنید وقت پرت در قرق دریا شاهنامه میشید دیگه گلمن نمیشید نمیشه حالا بخونید چی گفته لطفاً که برنامه‌مون رو گوش بدین به این خاطر با ما قهر نکنید پرسیده بودم اسم شهر اردبیل در شاهنامه آمده یا پهلوانی از آن دیار وحید آقازاده عزیز نام زیبای اردویل در ساهنامه اومده بله این نام در پهله بوده ارطا ویل, ویل یعنی شهر که در زبان انگلیسی هم در زبان فرانسه ویل گفته میشه ارطا یعنی در حقیقت ایزد ارطا یعنی نیروی حافظ خانواده و زنان نام بیل بیل روز 25 پنجم هر ماه هست که با پتبند ویل یعنی شهر شهر ارد شهر ایزد ارد در عوستا عشا بنکوی اومده و در پهلوی عرت در فارسی تبدیل شد به ارد شد اردبیل ببینید که الان بیل گفته میشه در خود اردبیل این اردبیل نمیگن اردبیل میکن این ویل اولا ارد در نام های دیگری مثل اردکان اردستان اردلان اردقش باقی مونده که همه اینا نام همون ایزد هم و بعد ویل در عربیل هست در اربیل عرب... عربیل... کردستان هست که بیل تبدیل به... یعنی ویل تبدیل به بیل شده و در بسیار از نام های دیگه این نام مثلا با... در بابول و کابل و زابل بیل تبدیل به بول شده اینا همه نام شهر شهر گرامی عربیل جایگاه ایزد ارد یا ایزد عشا و بنخوی است. خوخوااستم به رخمت استاد جوننیتی این رو عرض کنم که میخواستم در رابطه یک و در صورت امکان درباره غار کلما کره که تو کودش پیدا شد اگه میشه یه بدن شون خیلی ممنونی با تشکر دست استاد از دور می خدا آوضش باشه من می خوام که